20 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والاه وصحبه اجمعين اما بعد جلسی گذشت حدیث معاذ فوت حدیثی که ابتداش با گفته امام بخاری قال هشام که گفتیم امام بخاری نمدلث است که تدریس بکنه وصیقه قالای وصیقه عن بخوام بگیم این حدیث را و امام بخاری از هشام بن عمار نشیده باشه گفتیم حدیث معاذی که در, بخ... در صحیح بخاری هست صالح اش بن در نزد جمهور محدثین متصله مگر همون که ابن ح... ابن کثیر میگه بعد ها از اهل مغرب همچون ابن حجز بعد از 4 قرن انتقاد کردن و گفتن متصل نیست گفتیم که پس جمهور علما بر این که این گفته متصل است این قاعده لزامات بر اتصال دارد و و امام بخاری از هشام بن شنیده و هیچ شکی در این حدیث متصله به خاطر اینکه خود امام بخاری از هشام بن عمار در سجات کتابش نقل میتونه با لفظ حدثنا و حدثنی گلاله بر این میده که این شیخش هشام بن عمار غیر از این که شیخش هست، ثقه هم هست این خلاصه ای بحث حالا حدیث معزهه فراسیب مهمترین انتقادات چون ما انتقادات زیاد داشتیم بیش از ده تا انتقاد داشتیم که به همه اونها پاسخ دادیم ادامه بحثی من در روضه تدریس آخرین جلسه در بحث تدریس امروز مثال از بحث تدریس از جمله مثال ها حدیث حسن بصری است ابو هرره که یک از دوستان از کتاب لث بکونه بگه و من امثله تدریس اقلنا علیه رحمه الله و من امثله تدریس ومن امثله التدليس الحسن عن ابي هريره قال معاذك رحم الله و من امثله التدليس الحدد عن ابي هريره و على انكم و يجورون على انكم القدر لا يلقى وقد الروايه عليه الحسن قال حدثنا ابو هريره فقيل عن اني حسن بصري از ۱۰ صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف روضا حسن بستی الانتقاض هایی که هست روی امام حسن بستی در نقلش از حادیثی که به طور عامه یعنی الان میاد مستقیمن از صحابه نقل میکنه همچن ابو حره الانجاست که آیا حسن بستی از ابو حره از شنید اگ ا اگ اگ اگ اگ اگ خب الان بررسی بررسیم میکنیم بریم به سنان نسائی و ببینیم در یکی از انتقاداتی که الان روی حسن بسری میشه در نقلش از عذب و حرره چیلین هست در روایت حسن بسری در حدیث مختلعات، المختلعات و المنتجعات و المنافقات؟ امام النسائي شنين بيات قال الحسن لم اسمعه في غير ابي هريرة نفس عزيز يثبت سماعه من ابي هريرة فهو ثقة ذات والاسناد اليه سحيح ولذلك لا يرتفت الى اعلال النسائ له بالانقطاع ري قصيم من حجاره در بلد وفي امام النسائي ولا الى قول الشركان في الهولة الاوطار وهو من رواية الحسن عنه وفي سماعه نظر ولا شي سأخذ حسن باسري نفسك إن حديث حديثاً المختلعات والمنتجعات هنا المناطقات نفسك النقمي جنين من بياد حسن باسري اللهم ترك لأسرن النسائيات لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث أولا بعجز علماء فترك بس امام حسن بصری فقط همین یک حدیثی هست شنیده به اقرار خودش لم اسمعه من ابي هريره غیر هذا الحديث منذ ابو هريره نشدم قال این حدیث خود امام ابن حجر در مورد بحث این میگوید که در این نص دلیل هست بر این که حسن بصری از ابو هريره شنیده این خود امام حسن بسری سقه و سخت هست. از علمای بزرگ صحابه هست. از دوست از علمای بزرگ تابعی هست. و اسنادم تا حسن بسری صحیحه. پس نباید نگاه بشه به گفته حسن بسری که من غیر از این حدیث نشیدم. والا گفته امام احمد شاکر یکم إن قفر توجيه, توجيه بسرمي كولنية ثم قد جاءت روايات صحيحة فيها تصريح الحسن بالسماع من, من نبي هريرة مجموعها لا يداو اعتياما في صحة ذلك وإن فرق فرق فرقها العلماء في مواضع ببيد في أمام حسن بسي دار خياد روايات المدى كالسراحة قفت فلعت من نبي هريرة غيرت إن حادث درسك إن جاء قفت من غير إن حادثنا شديدا علت شاید منظورش خاص باشه یعنی ما باید نمی مقیدش بکنیم امام حسن بصری وقتی که این رو گفته مثلا من غیرت این رو نشمیدم خب این ثابت میکنه که امام حسن بصری شنیده حالا شاید منظورش الان در قسمت دوم منظورش این باشه که در یک موقعیت خاصی یا خصوصی مثلا اندازه شنیده یعنی در دلت عام لیکن در سید الجهات سید الروايات که خود حسن بصری اقرار میکنه میکنه سمعتو یعنی صراحتن امام شنیده مذهب الی که کدیگه هیچ جای شکیه ما همطور که ما محمد شاکر بی بیاد دیگه هیچ شکی بر این واقعیت مولک ما شک بکنیم که لاحتن بصری رضاتش از عبورات منقطع است و ثابت نیست هم که ما بنسای میگیت ص مطلقات ابو حصر رو انتقاد میکنه و میگیت اصلا رضات حسن بصری از عبورات ثابت نیست و منقطع است پس گفتی احمد شاکر گفتی یوما من حاجه بر این گتی اما حصر بصری چه داز عبورات خودش هم ثقه و ثبته و شکی در ایش نیست که می سند متصله میونه یک مسئله ای که امام احمد شاکر خاطر بهش میده می بیاد که اما معاصرت الحسن لا بیرره قما اظن احدن يشك فيها او يتردد معاصره بحث شاکر بخاری در روایت عن انس چون الان امتداد بحث ما در بحث تدریس امام احمد بس یجب از عنا بیرره ая митунем аз эш бетазири миянад. хоб, килқ шарте букори ки бояд хам аз бошад ва мулақоташ на ваъи сабит бошад. мигӯяд, имам аҳмад шафиъи мигӯяд, маосири ҳасан бабоҳурира шакият дар эш низ. фа абуҳурира матасна 57 ва میگه که امام ابو هرره در 57 هجری قمری فوت کرده و سن امام حسن رضی الله در, در, در اون موقعی که ابو هرره فوت کرده 36 سالش بوده با احتمال هست که شاید درش جایی که احتمال هست که با هم نشسته باشن و مثلا دیگه گرفته باشه بس خلاص خلاص یه وقت من اون چیزی که هست صلاح من نمیخوام که اداد بحث رو ادامه بدم من امتدادش بدم بازش بکنم خلاص یه بحثی که ترگاه امام حسن رضی هرگاه ایمان حسن بسهی. دو بید حد زفنا ابو غریره شک در اتصالش نیست و روایت صحیح. آلا میمونه روایت حسن بسهی از دیگر ازحاب. از امران ابن حسین مثلا از امران ابن خطاب اين و دیگر صحابه. این دیگه میدانش جدا گناه هست و بختش مفصله. ولی کن سماعش از ابو حلیره ثابت. سماعش ابو ثابت. شکی در به حالا یک گفته‌ای هم هست که امام امام ذهبی اینجا الحسن قال حدثنا ابو هریره حالا بوسیه اگر برم اجازه بدم من امثله تدریس مثل مصالح تدریس حسن از ابو و جمهورهم یعنی جمهور علمای محدثین على انه منقطع انكمنقطع منقطع وملاقات و ملاقات ما برخلاق اون چیزی ذهبی نقل میکنه که جمهور بر عدم قطعا برخلاق اون گفتیم که نه خیر ثابته و نفس هموردیم از تقریر خودش و خودش هم صدق بر ثابته که صراحتن گفته که من شنیدم هم در سنن نسائی و هم در دیگر کتابها نقل شده همونطور که امام حاشاخر میگیرد اصلا خودش صراحتن میگیرد که من از ابو شنیدم و از نزد سنی هم هیچ مشکلی ندارن که با هم نشسته باشه میگه وقت با رو بیان الحسن قال حدثنا ابو سکیل عنابر تحدثنا اهل ولده گفته شده که از حسان بسیده بولا شده که هر وا بدی از حدث نبهری گفته شده که منظورش از حدثنا منظور اهل شهرشه اهل منطقه‌ای که درش بوده یعنی اون کسانی که از علمایی که بودن با ابرل نشتن گفته منظورش ما که نشسته و میگی از سمعته و و ثبت از هم که به حجر دیگه نباید شک و تردید داشته باشیم که بگیم که نه در حد هم کدی نیست اگر چنین باشه که بی بیات حدثنا ابوهریرا این حدثتنا بی حدثنا کتاب ذو تفریح در دمعه دیگه حسن بسنی پس میشه بضاع کذاب دیگه بعد کلا ترک بشه که که این در کتاب‌های جر به تعدیلات ما اینجوری نقدی بر حسن بسی نداریم و قابل قبول نیست و نمیتونیم بپذارین اینجوری نقدی این یک نوع اخراج این هست یعنی یک روزری هست حسن بعضی هم آمدن روزر بیدن. گفتن که حالا مادمی که حسن بسیفت نشیده مادمی که می بید ابو هره گفته پس بیام یک روزری بهش بدیم بیم که چی تدلیس کرده وقتی که می گید حددن ابو هره را منظور اهل منطقش هستن که با ابو هره نشدن اینه نیگه گفتم اخراج و تعلیلی هست که با عبدال در نمی بواجه بينه مساله اذا مش وردت حديث قد يؤدي قد يؤدي, يؤدي حديث الازمر الى جهاله جهاله الرضي الثقه فيرد خبره قدر خبره الصحيح فهذه مقضى في غير في غير جامع البويه ولده الذي تقرر ان موضوعه ليس للصح فانا الرجل فقال في بجامعه حدث عبد الله وارادته ابن قاسم المصري فقال حدثنا يعقوب وارادته ابن قاسم وفيهما وفيهما لين بكل حال قد تريس خناق للاختصار لما فيه من تريج بدا ميگه تجليس تجليس اسماء حالا بحث تجليس اسناد گذشت درست تجليس اسناد گذشت تجليس شيوخ گذشت درست تجليس شيوخ و تجليس اسناد که فهمیدید این دو تا تدریسی که ما داشتیم میمونند آقا تدریس‌های تدریس‌های دیگری ما داریم از جمله تدریسات تدریسی که هست که سبب میشه راوی مجهول بشه مثلا یک شخص می بیاد مثلا بفر یک از راویان میگه حدثنا عبد الله حالا احتمال داره عبدالله الله ابن محمد باشه عبدالله الله احمد باشه عبد الله ابن فلان باشه از ده تا عبد الله شنیده حالا معلوم نیست کدومش تدین عبد ها باشه یعنی نباید یک راویی سرقه این کاری بکنه نباید بیاد یک اسمی را بیاره مطلقا یک راوی که در نزد ما مجهور باشه و ندونیم که این کی هست که ما در درصورتی مثلا بالفرد داشته باشیم امام بود بیاد بیاد مثلا حدت عبدالله و ما بدونیم که امام بود از سه تا عبدالله شنیده یک از این عبدالله هم ضعیفه ما اون حدیث را رد میک میاد این حدیث ملی فجر سای خبره صحیح این سبب میشه انکار که خبر اون خبری که نقل ردش بعدش بکنی این مقصد این فساد این کار یعنی کسی که بخواد این کارو بکنه که سبب میشه حدیثش رد بشه اونم در غیر صحیح بخاری و مسلم یعنی در صورتی که در غیر صحیح بخاری مثلا اگر در صحیح بخاری دیدید امام بخاری میگوید حدتان عبدالله غیر ممکنی که از یک عبدالله شنیده باشد از ده ها عبدالله شنیده درسته میگوید امام زهبی اگر در صحیح بخاری دیدید که بخاری دید میگوید حدتان عبدالله بدونید که این عبدالله منظورش ابن صالح مصری هست یه دلاشت طبق مدارسه و طبق بررسی ها ابن حجر میاد با یک نفس عمیق که من خودم تعجب کردم که كرد. این استقصال چطور سرچ کرده یعنی مثلا کامپیوتری کدام مثلا عبد الله بیا مثلا بالفاز ده تا روایتو کنار هم بذاره من تعجب کردم اینجا تا قال حساری میاد از همین عبد الله بن صالح مسیری ازلیت میاد قشنگ تک به تک میاد اول مثلا ماجرین داریم التي رواها البخاری عنه في صحیح انه من عبد الله بن صالح بصيغة حدثنا أو قال لي أو قال المجرد قليلة أحدهما في كتاب التفسير في تفسير سورة الفاتح قال حدثنا عبد الله حدثنا عبدالله بن نبي سلم فذكر حديث عبد الله بن عمر في تفسير قوله تعالى إننا سلناك شاهدا الآية وعبد الله هذا هو أبو صالح لأن البخارية رواه في كتاب الأدب المفرد أسكتها من دفاس كين عبد الله بن صالح نسري در غير إن كتاب در غير إن كتاب مستكتب هذا مفرلش بو إن إثنات صراحة ناكا جفقال حدثنا عبد الله من الصالح وهو كاتب لي في جزم به أبو علي الغساني ثاني في الجهاد ثالث هما في البيوت رابع هما في الأحكام خامس ها في كتاب الزكاة وعنده سادس في تلسيصة الأحزاب وعنده سابع في الاعتصام موضع ثامن بقوله في صفة الصلاة وموضع تاسع في صفة الصلاة أيضا قال حدثنا يحيى ابن بكير إلى آخر كلام يعني انسان تعجب میکنه یعنی چطور یک شخص مثلا یعنی اون هم امام ابن حجر رجاي تعجب نیست نفسشون حفظشون رو. که آدم بیاد مثلا در دل... یعنی انسان دهی قدش حقیقتش... یعنی این... وقتی که این نابغه ها رو اصلا میبینه انسان با دست گناه بکنه این همه ابزار و وسایل هست ولی نمیتونه خدمت به دین بکنه یعنی همین صحیح بخاری اون چتا خاروش ایب جرات ها هست که ما باید پاسوتمون بدیم ایви <أي> را حاله دیگرشان و فلان و انتقادات هست که میکنن که ما هنوز آسینامونو بالا نزدیم که بیام رد بدیم این ابن حجر و این آسینش که میبینید دو زحمت تهیده به خاطر اینکه جلوی شبهات رو بگیره بخاطری که دهن مخالفین رو بگیره که این ایب و ایراد نیست در صحیح بخاری و این احادیث متصل در جاهای دیگر هست و این عبدالله عبدالله بن صالح مسیح از امام بخاری هم مدلل نیست و نخواسته که که بخاطر تدریس این روایات همین این‌ها این یک کلماتاری هست یک یک ای هست بر بر ماها، ماها، بر یا برای مهاها در تأیید در یقین داشتن بر اینکه کاری که امام بخاری کرده یک کار امام بخاری نه کار حتی عمر حجر یک کاری بوده که یک, کار، یک کاری که نه چندین کار کارهایی بوده که حیقج جای شکر سپاس خداوند هست که با این کارها و زحمات اینها قدامان خاصه کد دینش رو حفظ بکنه. یعنی این منت قدامان دو برسر ماها. خب. الا خلاصه ایت چین چنین خاتمه بیده با ما من محجر و بجوا... جواب ذلك ان الوخاریه انما صنع ذلك لما قربماه ان الذي يريده من حادیثه صحیح عنده هو انتقاه من حادیثه عبدالعبدالله بنصالح دره در دره در یک دو ی ی امام بخاری مثل اینکه وقتی که میاد نقد میکنه از عبدالله اسمش اون نبیه میخواد بگه که این حدیث در نزد من صحیح صحیح نیست یعنی جزء از چند کتاب نیست حالت معلق رو داره دا نزد امام بخاری میگه است امام ابن حجار انما صنع ذلك لما قرضناه ان الذي يريده من احاديثه صحيح عنده این حدیث تاع عبدالله که انتقاد درش است حالا به صيغه تقریری نقد کرده كنيه يمكن ان تدخل كتابه ايش انتقاه من حديثه انها حديث منتقاه يعني انتقا شدهه الحديث عبد الله بن صالح المصري لكنه لا يكون على شرطه اگر امام بخاري ياتي فيله العلمي هسه اگر امام بخاري ياتي يحدثنا عبد الله بدون ان بر شرط كتاب صحيح ايش ليس شلون اگر شرط شرط كتابه بود اسمه كامل ما في الوقت اللي يجي حدثنا عبد الله ما عبد الله كلهم عبد الله هذا معلقه عبد الله هذا لكنه لا يكون على شرطه الذي هو اعلى شروطه الصحاه كبوره نشات صحه الكتابه فلهذا لا يسقطه مساق اصل الكتاب برمساق اصل كتاب نمياري حدثنا فلان بن فلان بان ترتيبه اصل كتابه شذذ لميكن وهذا صلاح الله قد عرف بالاستقراء من ساليا إن الاصلاح اللي هو خاصه ما بوخاري با ان باستقراء وراسي وتدقيق ما بهش رفيدين فلا مشافهتي والله اعلم ما جاني المشكل اذا ليش نيت بيجت و والله اعلم بعض جمله احاديثي كه مثل هنين حالات تدقيق وقدش داره وقال حدثنا يعقوب ان من بخاري حدثنا يعقوب ان عبد الله ان يعقوب ورد به النكاس وفيه مالي امام ذهبی هم چنین نظر می وقتی که ذکر میکنه یعقوب و عبدالله ابن صالح مشری هر دو تاشون حد هر دو تاشون نقد درشون هست لین یعنی یک نوع ضعف اندکی در حدشون هست وقتی که گفته میشه فلان ان در روایتش یعنی نرمی هست به بعد شلووله قوی نیست محکم نیست گفت بالاتر هایی که این روایت ها رو امام بخاری بدون تصريح به اسمشون میگویت حددتا یعقوب رهاش میکنن فقط اسم تنها رو میره اللہ خلاصا یه بحث جرب تعدیل در عبدالله بن صالح المصری اون چیزی که امام احمد میگویت ان اول امری کانه متمسکن ثم فسده به آخره يعني عذرهایی که ما میدیم من باقاری و دطاعی که هست ما از ازمان باقاری مم ازم ازم ازم ازم ازم ازم ازم ازم ازم ازم زعیف نیست. همه رواته زعیف نیست. بس دیگه داره که اول اول اول اون که عمرش نقدر در آخر عمرش. ان اول عمرش متمسک اول عمرش متمسک بود. یعنی در جوانیش سفت و محتم بود. ثم فسده به آخره. آخر عمر بایدش عباس شده. مثل هشام نعماری که ما گفتیم. این انتفادی که امام محمد بن حنبل میکنه و امام بن نبيل حاتف و دیگر ایمان نهت میکنه. دو مر این که امام حجر میگید درسته که عبدالله بن صالح مصری زهد درش هست لیکن در کتابتش ثابت. خسرا در هاش از لیس و نسعد. کاتب لیس و نسعد هست. روایتهای لیس و رو میگه بشته. در روایتهایی که از لیس و نسعد رو کتابت نقد میکنه قوی هست. بخاطر همینه که بخاری بیشتر احادیسی که ازش نقد کرده در الله بن ص اگر واسه این مثل مثال، اگر که نوشته ازش و اگر ضعف یم هست به خاطر غفلت خیلی کمی در اون احادیثی که از شیخ جدیب، یعقوب بن کاستر هم همون، هر دو تاشون که انتقاد انتقاد شده، یک انتقاد کمی هست در حدشون که خطایی در صحیح بخاری ایجاد نمی‌کنه. خصوصا اینکه گفتیم امام بخاری بر مساق کتابش، یعنی بر شرط کتابش نیاموده. این بر اون طبق روال عادی طبیعی که ته بخواهی داره این روائتها ازدک نکرده بلکه رواش کرده با اسم مطلقتون حدثن یعقوب و حدثن عبدالله که فکر نکنیم به این روائتها بر شرط کتاب شرس خب و بکل حال خلاصه بحث و بکل حال خاتمه بحث, بحث, بحث, بحث, بحث تدریس بلد این سلسل مراهد التدریس منافل الاخلاص لما فیه من التزیون تدریس بر خلاصه اخلاص هست چون این تضعیل درش هست یعنی انسان میاد حدیث را تضعیل میکنه یا حدیث را به نحبی توری توجیح میکنه که اون حدیث صحیح هست مثلا وقتی که یک شخص میاد مثلا محمد ابن اسماعی که دو نفر هست میاد اسم مثلا یک شخص دیگر را مثلا بفر میگه حدیث بخاری مندورش نه مندورش علاق میخواد توهم ایجاد بکنه برای ماها که محمد بن اسماعیل بخاری ها تاثری کسی دیگه هست حالا چه محمد بن اسماعیل میگه چه بخاری تنها بودی هر وقت توهم ایجاد بکنه که این شخص دیگر هست یک تزیین و تزیین کرده و روایت شخص ضعیف رو با صحیح عوض کرده تا اینکه ما فکر بکنی می روایت صحیحه این از مقاصد یعنی این از ایو یارات های تدریسه که انسان فکر میکنه روایت متصل درسیته که منقطع از شخص ضعیف شنیده مثلا به شخصی که مثلا بر حفظ شما نیست که بحثه ولی در مسلم در بشقی گذشت در ربایت اشت اوزائی بله اما انتقاض های علما خیلی زیاده یعنی در بحث تدریز و اون انتقاض هایی که میکنن و زش می الان حالا خود تدریز کردن زیاده من نمی خواهران الان بحثش رو باز بکنم لیکن خلاصه مطلب از بحث تدلیس و مفاصله اون. اولا تدلیس از مفاصله تدلیس. این است که تدلیس سبب میشه که در دروغ بر رسول الله صلی اللہ علیه و سلم باز بشه. در دروغ باز بشه. یعنی هر شخصی بیاد با لغزعن با سیغه یه قاله بیاد مثلا تدلیس بکنه از یک وضعی شنیده باشه وضع را حج بکنه که این مالی بود بکنه که این حدیث خودش از اون شیخ سقی نیده در داره چه حدیث درست این اولین حدیث در دروغ راه باز میشه دومند سبب میشه که روایتی که ضعیف صحیح صحیح داشته بشه این روایت ولید بن از ضعیف ولید بن مسیب که صدوق معروف به علم علما تاییدش کردن میگه وقتی که می تحلیل میکنه با سیره اهل، شده که روایت صحیح این از ایب و یلاده به همین ولید بن که صدق هست به این کارش درجه روکشmiot پایین به درجه A1 هم میرسه تدلیس خودسه تدلیس از اسباب ضعف ترایی ضعیف میشه حالا مطلقاً دست یکی داره که اون رو به چه شانه باشه حدش چطور باشه اگر سیغه عن به ببره و خالص و صلی دون مسلمی وقیل الولید این دونفاط سیغه عن بکار کار ببرن بر نمیفذیرن تا این کلاره باعث جای در مصرح به معاویه است و یا کسی دیگر هم رو باعث نکرده باشه ولی اگر صراحه هستم بگن حد دفن ها خوصا که صدوق هستم مثل بسیم و بقیه ابن و بلید ما ازشون می پذیریم من در بحث تدریف اینو کبر و غروره شخص مثلا میاد اثنادو در اثناد یکی را بیار دو را بیار حزمی کنه تا اینکه که بگه بله من اسنادم عالی هست اسنادم خیلی بالاست من به باسطه بین من و رساس هستم خیلی کمه این از عیب و عی همون بحثی که خود زهری بهش اشاره میکنه یه نوع تدویر درش هست وقتی که انسان میاد یک راویه و الله را, را حضم میکنه میسه که یک تقلبی، یک تدویری در کار هست حالا تدویر در حسن خودمون به کار برده میشه چی بشه میگن آراد تقلب بالا یکی یک مسئله که شاید الله جا چه گفته بشه چی بشه گفته میشه در لغت کار مثلا برفع تضیی مثلا طول پول پول درست میکنن بهش میگن تضیی درست اصل پول اصلی داریم ولی یک شخص بیاد پول قلابی رو بسازه این پول قلابیتونش جا خب حالا ما خب شیشومین می در وقت تدریس که سبب میشه خود را هم زیب بشه وقتی که تدریس میکنه و ما بهش پی میبریم که این رابی فلانجا تدریس کرده سبب میشه خود رابی هم زیب بشه شنش بده پنجمی؟ پنجمی شن و تدریس هم کوچیکی هست در شعن خود محدث این محدث حالا همون جرح یک جنبش و کوچیکی این محدث نجمعه این ایسان بودش بگه چه روز میکردی؟ چه لزو میداش حالا تو که انتقاد می‌شی خود ولیعه چرا این کارو کردیم؟ خب بیا برای خودش بک یه بهانه‌ای می‌سازین که من خواستم که امام اوزئی رو از این رابیان ضعف پاک بکنه خب آیا پاکسازی اوزئی سبب بشه که در بشه که ما ندونیم که تو از کسی نیستی یا اوزئی از کسی نیسته تو تو می‌خوای اوزئی را مقدس بکنی که رسول الله صلی الله علیه و دروغ جلوش دست بشه این از چی سبب شده که امام علی بن ابی طالب این کاری بکنه الله تعالی خود خودشان اون عالم میاد پایین به خاطر که خیلی از علما مثلا اومدن شدید نقد علی بن ابی طالب رو بعد شدیداً جرح و ذل متلک قرار این خلاصه بحث مقاصد فقهی هست تذکریهای دیگ هم هست تذکری قسمت علی سعد داری جایی قد دارین تذکری سکوت دارین تذریه مختلف مثلا تذریه سکوت به تمام میگم حدتنی فلان فلان فلان сокет меша баъд аз ҳар лаҳда мегам инма вал аъмалу биль-яқ яъ маъно мегам атнодиро меёрам мия ҳадаса на фалон ал-фалон баъди кам саттаса мегам ва ҳадаса на фалон ан фалон ва ваъаз ва ҳадаса на сатта дигар این تدریج سکوت است. سکوت اخیار می‌کنه چه لحظه؟ حالا دندلی می‌کنه با خودش چی تو دلش میگه الله اکبر. بعد میاد دنباله بحث ادامه میده به طوری که توهم میجاد بشه که شاگردان فکر می‌کنن که چی؟ این حدیث متصل بهله با این اسناد شنیده. حالا تدریج تو آخر، یعنی که سکوت اینو خیلی مثلاًش شریف نیست یعنی خیلی زیاد نیست. خیلی یعنی نمیشه روش انگوش گذاشت. بیشترین چیزی که در بحث تدریس مده نظر طالب علم باید باشه تدلیس شیخ و تدلیس اسلام تدلیس شیخ و تدلیس اسلام اند... که هر دو شرفت رو ذهب شدیم این دوتا مهمترین انواع تدلیس هستن که زیاد بکار برده بیشه و راویان بقاطر اون جرد بیشه انشالله ادامه بحثمون حقیان در مطرب و معلل مطرب و معلل سبحانه که الله محمد سبحانه محمد صلی اللہ علی محمد, سبحانه محمد. سبحانه محمد. سبحانه محمد. سبحانه محمد.